بسم الله الرحمن الرحيم درسة سيوحشتم مرتبة الحال والصاحبها وعاملها مرتبة الحال وصاحبها وعاملها دو يستهفت هل تأتي الحال متعددة اي حال متعدد ميات دو يستهفت ما هي مرتبة الحال مع صاحبها رتبية یا ترتيبها لها من رهبها صاحب الشهست 292 متى يجب تأخير الحال؟ چه زمانی تأخیر حال واجب است؟ 220 كم قسما عامل الحال؟ عامل حال بر چند قسمی باشد؟ 211 ماهی مرتبه الحال مع عاملها؟ رتبه و ترتیب حال همراه با عاملش چی است؟ 212 متى يجوز حذف عامل الحال؟ چه زمانی جایز است که عامل حال حذف بشه؟ 213 متى يجب حذف عامل الحال قياسا؟ چه زمانی واجب است متأجبو چه زمانی واجب است حذف کردنه اعمله حال شکل قیاسی و قانونی دویست هفت این الحالة مفردة كانت او جملة تأتي متعددة نحو جاء زيد راكبا مبتسما قام يمشي راكدا جاء امر يركض وراء ابيه وهو فرح و کذل که صاحبها فی اینه یکون و متعددن نحو لقیت و زیدن منحدرا. بله میگه حال چه مفرد باشه چی جمله به شکل متعدد میاد یعنی چند حال میتونه با هم بیاد مانند آمد زید در حالی که سواره بود و میخندید لبخند میزد راکبان هم حاله در این جمله مبتسمن هم چیه حاله در مثال بعدی قام يمشی راکدان خب يمشی هم حاله راکدان هم چیه حاله جاء عمر يرقض وراء ابيه و هو فرحون يرقض وراء ابيه هم حاله و هو فرحون هم تیه؟ حاله این جمله جمعه میگه و همچنین صاحب حال، زل حال میتونه متعدد باشه. مانند در لقی تو منحدرا مصیدا منحدره. دیدم زید را مصیدن در حالی که من بالا میرفتم. منحدرن و زید هم به چی میرفت؟ به پایینی، به انحدار. مصیدن تو همزله حاله زیدان هم چیه؟ زله اینجا پس ما دو تا صاحب حال داریم. و كذلك صاحبها فانه يقول متعددن. میگه هم این صاحب حال یا همون ذل حال اونی که حالتش میشه میتونه چه باشه؟ متعدد باشه. آره هم تو ذل حاله صاحب حاله هم زیدان. پس متعدد شد. پس چه جور؟ فایده ان الحال اذا كانت تسله لكل مما ابلا كانت لما تليه ولو تقديرًا فإن كانت مفردة نحو لقيت زيدًا ماشيًا كانت لزيد فإن اريد كونها للمتكلم قيل لقيت ماشيًا زيد در فائدة نقطة قشنجي ميگه در فائدة نقطة تشي ميگه میگه اگر حال اگر حال صلاحیت اینو داشت که برای هر یکی از ما قبلش حال قرار بگیره برای هر یکی از ما قبلش چی یعنی برای صاحب حالهای متعددی میتونست چی قرار بگیره حال قرار بگیره میگه در این صورت حال برای همونی قرار میگیره که بعدش اومده برای همونی کی چی متصلن بعدش اومده اگرچه که تقدیرن باشه فا انکانت مفردتن. اگر حال مفرد بود مانند لقیت و زیدن ماشین اینجا ماشین میتونه برای تو حال قرار بگیره برای زیدن هم قرار میتونه بگیره پس اینجا برای کدوم حال؟ برای زیدن چون بعد از زید اومده چون بعد از چی اومده؟ همینو گفت میگه ای ای ان ان الحاله اذا كانت تسله لكل مما قبلها كانت لما و برای مبع برای ما برای اون کلمی که بعدش اومده حال قرار میگیره برای کدو اینجا بعد از کدوم مده بعد زید اومده پس برای زید حال این ماشیان خب اگر ما میخواستیم اینو برای تو حال قرار بدیم لقی تو زیدن ماشیان ببین این برای زید اگر حال بشه معنیش اینجوری میشه ملاقات کردم زید را در حالی که زید پیاده بود داره حالت کی رو بیان می‌کنه زیدو حالا اگر حالت تو رو بیان کنه من دیدم زید را در حالی که من چی بودم پیاده دیگه اگر بخوایم حالت تو رو بیان بکنه ولی اون موقع دیگه حالو بعد زید نمیاریم بعدش توش میاریم میگه فعل اوریده حال المتکلم اگر خواسته شد که این حال برای متکلم قرار داده بشه اون موقع جمله اینجوری میشه لقیتو ماشین زیدن دیدم در حالی که پیاده بودم و وین کانت متعددتن لصاحبینی میگه اگر زلحال اگر حال متعدد بود یعنی ما در یک جمله دو تا حال داشتیم متعدد حال داشتیم و صاحبین هم متفاوت بودن و دو تا صاحب هم داشتیم آه مانند لقیتو زیدن ماشین راکبا اینجا ما دو تا صاحب حال داریم تو زیدن دو تا حال داریم ماشین و راکبن اه؟ اون موقع چونین ماشین رو برای صاحب حال اول در نظر میگیریم راکبا رو برای صاحب حال دو بی این شکل تو ماشین من دیدم اون رو در حالی که نه اون موقع اون موقع ماشین رو برای زید در نظر میگیریم چون بعد از تی اومده؟ بعد از اومده رو برای اولی اینجا دقت کنیم مسئله خیلی مهمه میگه ما دو تا صاحب حال داشتیم حال های متعدد هم داشتیم اون موقع ما حال اول رو برای اون صاحبی در نظر میگیریم که بعدش اومده است و حال دوم رو برای ذوال اول حال دوم رو برای زلحال اول در این مثال خودمون که لقیتو زیدن ماشین راکبا من دیدم زید را در حالی که پیاده بود و من هم سوار بودم یعنی ما ماشیا ببین لقیتو تو زیدن ماشین راکب ماشیا رو برای زید در نظر می گیریم و راکبا رو برای تو دیدم زید را در حالی که زید سواره بود و من هم چی بود؟ دیدم زید را در حالی که ماشین بود پیاده بود و انا راکبن و من چی بودم؟ من سواره بودم باله ای لقی ماشین دیدم زید را در حالی که سواره بود و انا راکبون و من سوار بودم میگه کانت الاولا لزید حال اول برای زید هست و ثانیتو للمتکلم و دفومی که راکبن باشه برای توی متكلم هست بناهن الا ان الاولى و صاحبها قد ترزا بینهما خب اینجا چی میگیم؟ میگیم بابا حال ذل حال دوم دو صاحب حال دوم دو که زیدن باشه با حالش که ماشین باشه بین لقیتو و راکبا قرار گرفتند بین چی قرار گرفتند لقیتو پس والمعترض في حكم الساقطي فتكون في التقدير التاليه له میگه و معترض هم در حق ساقته معترض هم در حق چیه؟ ساقت. یعنی گویی که اینجا زید و ماشینی وجود و راکبن برای خب ولیکن یجوز اختلاف ها در ترتیب این امن لبسی فتقول میگه جائز است اختلاف این ترتیب انگامی که پوشیدگی در کار انگامی که شباهتی در کار نباشه قاتی کردنی در کار ما با رکبتو البعیره خوب خب اینجا رکبتو البعیره مترنمن ما میدونیم که این مترنمن حال تو هست و حال بعیر نیست بله چون مترنمن کار شطور نیست کار کار متکلمه چون مترنم به معنی سراینده هست خاننده هست و بئیر نمی سراید اینجا ما دیگه نمیگیم که مترنمن چون بعد از بئیر اومده پس حالکیه کیه؟ ایره. اونجا ببینین ترتیب باید راحت کنیم که پوشیدگی پیش؟ نه چون هم زید و هم تو اونجا صلاحیت اینو داشتن که حال براشون قرار بگیره لذا قانون گذاشتن نحوی ها عرب ها که اونی که بعدش اومده حال مال اونه حال مال شنوانده اینو بدونه تا کی بدونه ولی در این حالت همچنین لبسی وجود نداره یا مثال بعدی لقی تو هنده ضاحکن عابستن خب اینجا هم ضاحکن صفت مذکره عابستن صفت است پس ما میدونیم که ضاحکن حال تو هست و عابستن حال هند هست عابستن حال که هست لیزه اینجا ترتیب رعایت نشده ترتیب اینجا رعایت نشود. اگر ما ترتیب رعایت میکردیم باید چنین میگفتیم لقی تو حند آبستا ضاحکا یعنی اول صفت حال حندو می آوردیم که آبستا باشه بعدش حال تو را که ضاحکا هست ولی از اونجایی ای که اینجا ما از روی لفظ تشخیص مدیم که این حال مال کدومه کدوم صاحبه حاله و اون یکی مال کدومه اینجا مشکلی نیست که ترتیب ک نكرم پس معنیش این میشه من دیدم در حالی که می خندیدند در حالی که او ابوس بود حکم الحالی تو اخر ان صاحبها ولكنها تقدم یا تقدم تقدم یا تقدم وجبا تقدم في ثلاثة مواضع بگه حکم حال اینه که بعد صاحبش بیاد در ترتیب حکم حال اینه که بعد از اما در سه جا واجب است که مقدم بشه در سه جا واجب است که حال قبل صاحب حال بیاد اذا کان صاحبها نکرة محضه زمانی که صاحب حال نکره محزه باشه یعنی مضاف نباشه و بعد از نفی و استفهام نباشه مانند قدیم مصرعن رجلون از اون جایی که اینجا صاحب حال رجلون نکره محض هست حال که مصرعن باشه قبلش اومده قدیم مصرعن رجل آمد در حالی که شتابان بود مردی پس در این حالت باید اول حال بیاد بعد صاحبش رأیت رابیدن اسدن اینجا هم از اون جایی که اسدند نکره محزه هست، اول حالش که کرایبودن هست، اومده، بعدا خوده. باید. خب با. خب رئیتو رایبودن اسدند دیدم، شیر را، شیری را در حالی که در رنده بود. بله. تر در چی؟ چی؟ یعنی مضافن واش بعد از نافی استفهام قرار نگیره واشتام. شی, شی منظور زمان که چه زمان نکره محضی زمانی که مضاف مبو و بعد از نافی استفهامه اون موقع نكره محزی یعنی اگر مضاف بود که محضی نه قبلا نیوانتا فایده انما اوجب تقديمها لالا تلتبس بالنعط صاحبها المنصوب خب میگه در همچنین این حالتی چرا واجب است که اول حال بیاد بعد صاحبش میگه واجب کردن مقدم بودنش رو در این حالت به خاطر اینکه که پوشیدنش صاحب حال حال با نعت صاحب منصوبش پوشیدنش ببین اگر در همین حالت ما بگیم قدیم رجلون در حالت نصبش البته رعیت و رجلان اون موقع ما که این مصرعان چیه؟ صفته با نعت پوشیده میشه با نعت منصوب با نعت چه؟ لذا برای این که این حالت پیش نیاد اول حالا میاریم بعدش چی رو؟ چون در حالت نصب ما با مشکل مواجه میشیم در حالت رف نه در حالت رف نه میگیم جا الرجلون مصرعن ولی در حالت نصب میشه رعی تو رجلون خب با صفتش قاطی میشه چون نعت هم به این شکل نعت هم پس میگه واجب کردن در این همچونین حالتی مقدم کردن حالو بر صاحبش تا ملتبس نشه حال با نعت زمانی که صاحبش منصوب هست مانند رعیت و رجلن راکبن رجلا و رجلن و حملو غیره علیه تردن لیل خوب چرا در حالت میگه رفع و در حالت جر میگه واجبش کردن میگه به خاطر هماهنگی با باب هماهنگی قانون کلی بشه دیگه اذا كان محصورا نهو ما سافر ماضيا الا ابوک یکی دیگر از حالت هایی که باید حال قبل از حال بیاد یا قبل از صاحب حال بیاد زمانی هست که ما میخواییم زول و محصور کنیم میخواییم زول حال کنیم اینجا حالو و قبلش میاریم بله مانند ما سافر صافر ماضین الا ابوک بس زمانی که حال محصور باشه زمانی که حال محصور چه باشه محصور باشه برای زول حال إذا كان مضافا إلى زمير ما يلبسها أن يعود على شيء يتعلق بها أو بمتعلقها نهو جاء يأخذ بثأر كليب أخوه وسار يدير الباخرة ربانها وطنين حالة السيفو مش ميجي إذا كان مضافا إلى زمير ما يلابسها أي يعود على شيء يتعلق بها أو بمتعلقها نحو جاء يأخذ بسعر كليب أخوه سار يدير الباخرة ربانها ببين إن جاء در مسال جاء يأخذ بسعر كليب ها ميجي حالة أول زمانكي زلحال نکره محزه بود حالت دوم دو زمانی که زلحال محصور فیه بود محصور بود مانند ما سافر ماضین الا سفر نکرده بود در حالی که گذرنده باشد جز پدرت جز در حالت سوم زمانی که مضاف به زمیری باشد که اون زمیر ببین زمانی که زلحال مضاف به زمیری باشد که اون زمیر به حال یا به متعلقش ارتباط داشته باشه چی داشته باشه؟ ماننده جا یخوزو بفعر کلیب این اخو آمد برادرش ببین اینجا فائل ما حال ما اخو هست ولی چرا اینو در آخر آوردن؟ به بفعر کلیب حال که اینجا جمله هست و اول آوردن بخاطر این که در اخوهو اخو مضاف به زمیری هست که اون هو به حال برمیگرده به کله برمی بر می‌گردد. می‌کی بر بله. میگه آمد برادرش در حالی که انتقام کله بومی انتقام کله بود. کله چکار می‌کرد؟ خولی اگر ما بگیم جا اخو هو یا خود کله، اون موقع زمیر به ما بعد برمیگرده زمیر به کجا بر بله پس اینجا اول حال میاد و بعدش ذل میاد در ساره یودیر الباخره ربانوها همچنین ساره ربانوها یودیر الباخره در اصل چنین هست ولی اون جای که ضمیره ربانوها ربان صاحب حال ما فاعل دیگه صاحبانو میگند خب میگه اون ناخودایان ناخودایان باخره اون کشتی خب ربان به ربان زمیری چسبیده ده که باخر بر گرده که به چه بر گرده؟ دوی سلوه یجب تأخیر الحال سلاثه مواضی واجب است تأخیره در سمورید اذا کنت محصورا فیها زمانی که حال محصور فيها باشه اونجا زال حال محصور فيها بود اونجا چه خود حال اذا کنت محصورا فيها زمانی که حال محصور فيها باشه مانند ما نرسل الرسول إلا مباشرین نمی نفر الصادم نمیفرسم را جز بشارت دهنده یعنی ده. فقط اونا رو ما بشارت دهنده میفرستی فقط در حالی که چه باشن بشارت دهنده باشن که اینجا مباشرین محصور فيها پس باید در آخر بیاد اذا كانت جمله مرتبطه بالواف زمانی که جمله باشد حال و رابطش هم بواف باشه با واف ربط داده در این حالت هم باید در تأخیر بیاد من مرد جاری الغلام وهو يحمل البشره آمد پیش من غلام و او بشارت حمل میکرد خب اینجا هو حمل البشرا که جمله حالی ما هست با واو داده شده باچه پس باید تأخیر بشه سه اذاکان صاحب ها مجرورنه بل او حالت سوم که حال باید تأخیر داده بشه زمانی که صاحب حال مجرور باشه یا به وسیله یا به وسیله حرف جر بانند عجبتو من ذهاب امیری ماشین تعجب کردم از رفتن امیر در حالی که پیاده بود اینجا امیر مجرور هست به وصیله مضاف چون ذهاب مصدر هست امیر فائلش هست ولی مضافه به امیر هست مضافه به چیه؟ بله پس اینجا از زونجای که زول حال ما که امیر هست مجرور به اضافته ماشین باید بعدش بیاد مران تو به هندیم جالستن اینجا هم حال که هند هست به وصیل حرف جر مجروره پس جالستن باید بعدش بیاد رد شدم از هند در حال کنیش هسته بود هذا در ازالم یکن مجرورن به حرف زاید میگه اما میگه البته این مواردی رو که گفتیم زمانی که مجرور با حرف زائد نباشی اگر با حرف زائد مجرور شده بود اون موقع مشکلی نیست میتونه قبلش بیاد میتونه حال قبل از زلحال هم بیاد. بیاد ولی اگر با حرف زائد نبود با حرف جر بود و اما زائد نمید. اینجا دیگه باید ترتیب راید بشه اول حال اتر. زلحال بیاد بعدش حال, حال. و الا فلای امتنی او تقدیمها میگه اگر حرف جر حرف زائدی بود پس مقدم شدن حال بر زلحال ممنون نیست من ده هل جا کماشین من رجن آیا آمده است پیش تو شخصی در حالی که پیاده باشه من رجلین فاعل جاء است این من من زائد است رجلین لفظاً مجرور اما محلاً مرفوع چون فاعل جاء است فاعل چی است اینجا من من زائده است فاید به خاطر ماشین که حال باشه قبل از رجل اومده که ذل حاله اما اگر این من زائد نمی بود باید ماشین بعدش اومده بود فواید المراد هنر بالاضافه المعنوية غير غیر لفظیت، هذا هاذا یسیح معه تقدیم حالی ال مضافله. یک مسئله مهم دیگه که میخواد بگم بیان کلی ما قبلا خوندم نوع اضافه داریم، اضافه لفظی و اضافه معنوی. زمانی حال برزول حال نمیشه نمیتونه مقدم باشه که زلحال حال ما اضافه معنوی باشه. اگر زلحال حال ما مضاف لفظی بود اضافه چی مضافه لفظی بود در این صورت حالش میتونه قبلش بیاد اگر لفظی بود اضافه حال میتونه مقدم بشه اما اگر معنوی بود نه باید بعد است زلحال بیاد حال مانند هاذا شارب ممزوجتن القهوتا که اینجا شارب مضاف هست به القهوة بتي القهوه القحوة. لذا ممزوجه كحالهاس قبل از قهوة قبل از صاحب حال اومده چرا بگيم درس قهوه مضاف اضافه ما اضافه لفظي اسم فائل اضافه اسم فائل واسم اسم المفعول اضافه لفظيه اضافه چيه بلسي بله والاصل اصل جمله در هذا شارب القهوة مافوجتا هذا شارب القهوة مافوجتا وهو قليل الاستعمالي و هم خيل كم استعماليش انهم خيل شي كم دو أما فيما سي و ذلك في وجود التقديم والتخفيف در غير زين دو حالات اون جاهایی که او مقدم بودن واجب بود و اون جاهایی که تأخیر شدن حال واجب بود. بگرای زید دو در جاهایی که جایزه. یعنی ما میتونیم حالو قبل از حال بیاریم و میتونیم زول حالو قبل از حال بیاریم. جایزه. مانند زرت الحیع آمرانج یا زرت آمران آل حیه رئیت زیدن ضاحکن رئیت ضاحکن زیدن. جایزه در حالت های دیگه چیه؟ جایزه دویستو ده آمله حال قسمان آمله حال بردو قسمه زیارت کردم محله را در حال که چی بود؟ آباد بود محله قبیله خوب آمله حال قسمان آمله حال بردو قسمه لفظیون یک آمل لفظی و هو الفعل او که همون فعل یا شبه فعل می باشد. دو معنويٌّ أمل معنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه أمل معنوي كدومي وليك معنى فعل ودار ولي ألفاظ ولي خدش لفظان فعل حروف شو نداري والمعنوي كدومك وهو اسم الإشارة أمل معنوي حال اسم إشارة هست ما ند هذا صديقك ما قبلنا إن دوست توزت در هالك رول ها؟ در لحاظه معنای این هادا معنای رو داره یعنی اشیر رو یعنی اشاره میکنن به دیگه چی از آملهای معنایی هست زرف مانند زیدون انده که ضایفن زید نزد تو در حالی که مهمان است خب ده زرف هست عامل ما اینجا انده هست زرف هست والجار والمجرور عامل بعدی جار و هست مانند زیدون فیدداری نائمن زیدون فیدداری اینجا عمل ما مجرور جار و هست و احرف التمنی والترجی والتنبیه والتشبیه والندا عمل ها دیگه چه هستن؟ رفای تمنی و ترجی و تنبیه و تشبیه و ندا تمنی نازلا کاش او ما پیاده بیشد نازل بیشد خب اینجا عمل ما لیته هست که تمنی هست لئل زیدن الینا قادمن شاید زید اسمت ما لا بیاد در حالی در در حال آمدن باشد خوب اینجا لا هست است که ترجیح است کانه البدر طالعن تشبیه است ها انه الخطيب بصقا اینجا ها هست که حرف تنبیه یا زید هاجما یا زید هاجما بله اینجا حرف چی هست؟ یا است فائده قد وارد بعض الاستفامی اسماء منصوبه علی الحال میگه بعد از استفهام هم اسم منصوبی به خاطر حال بودن اومده اند گاهی آمده اند اسم منصوبی به عنوان حال بعد از استفهام مانند ماشیانو که قائما اینجا قائما حال هست و بعد از استفهام اومده است بعد از ما استفهامی اومده است ما بالوک ماشیان چیز بال تو در حالی که پیاده ای و شعنتو چی بود در حالی که اصطاده ای؟ خوب من ذا فلباب واقفند چه کسی هست؟ دروازه؟ در, در, در حالی که است بله اینجا میگه بعد از استفهام، اسمای منصوبی به خاطر حال اومدن ما استفهامیه، من استفهامیه دویست و دو یازه دو دو دو دو حق الحال انت تتاخر عن آملها حق حال اینه که مش متأخر, متأخر باشي. غير أنها تتقدم عليه وجوباً إذا كان لها صدر الكلام أما متقد أما قبل أز ببين حق الحال أن تتأخر عن عملها حق حال اين كي بعد است عامل بياد در در فارسي روان خدمون حق حال اين كي بعد است اولش بیاد. جز آن که به شکل وجوبی مقدم میشه زمانی که صدر کلام بود زمانی که از اون کلماتی بود که جایگاهش کجاست جای؟ صدر کلامه مانند کیف عاده افوک که کیف حال هست از اون کلماتی که جایگاهش کجاست ابتدای جمله وجوازاً پس اگر از اونایی بود که صدر حقش صدر کلام بود وجوبا مقدم میشه بر عامل عاده عامل هست کیف حال هست اینجا قبل از عامل اومده جوازن هم میاد اضاکان الامل و فعلا متصرفن و صفت غیر افعل تفضیل جوازن هم قبل از عامل میاد زمانی که عامل فعلا متصرف بود یا صفت بود البته افعل و تفضیل نبود از میان صفت ها افعال و تفضیل مانند باس من قادم الزائر آمد زائر در حالی که خوشحال بود خب اینجا باسمن قبل از عامل اومده چون قديمه فعل چیه فعل متصرفه فعل چیه بریئا اخوك محبوسون اینجا هم حال ما قبل از عامل اومده قبل سی اومده عامل اومده چرا چون عامل ما صفت است محبوسون هست اسم مفئوله اسم فائل اسم مفعول صفات مشبهه اونا رو قبلا ما خوندیم که اینا عامل میتونند واسه شبه فعلی دویستو الحال ان عاملها في مسائل واجب است تأخیر حال از عاملش در چند مسئله ببین اینجا گفته بود حق حال اینه که بعد از عامل بیاد بعدن استثناءه رو بیان کرد الان میگه واجب است تاخیر حال از عامل در مسائل زیر واجب است تاخیر عامل از واجب است حال از عامل یعنی بعد بعد از عامل بیاد در مسائل زیر یک آن یکون العامل فعلا جامدا لا يتصرف في نفسه كاف التعجب نحو ما احسن زيدا مبتسما میگه واجب است تأخیر حال از آملش در مسائل زیر زمانی که عامل فعل جامد باشد زمانی که عامل جی باشد متصرف نباشد مانند افعل التعجب مانند افعل التعجب و... بله افعل التعجب مشتق نیست مانند ما احسن زيدن ما بتسیما اینجا ما بتسیما نمیتونه قبل از ما احسن بیاد چرا چون عاملش متصرف نیست دو ای اسم تفضیل قبل از اسم تفضیل هم نمیتونه بیاد مانند زید الفصح الناس خطیبا خطيبا که حال هست قبل از عاملش که افسح باشه نمیتونه بیاد سه ای یکون اسم فعل قبل از اسم فعل هم نمیتونه بیاد مانند نزالي عن که جا مصرع نمیتونه قبل از نزال نزالی بیاد چهار ای یکونه متضمن معنای فعل دون حروفی که اسم اشارهتی زمانی که عامل متزمن معنای فعل باشه و حروف اشاره نداشته باشه که قبلا همین خودی الان خودی بش در همین درس چه زمانی معنای فعل و داشت و حروفش رو نداشت مانند این که اسم اشاره باشه مانند این که چه باشه هادا اشاره هذا اینجا عامل ما اسم اشاره هادا هست در نتیجه مقبلا نمیتونه قبلش بیاد چرا چون عامل ما معنای فعل رو داره اما حروفش رو نداره ادات تشبیه یا تمنی یا ترجی یا تنبیه یا ظرف یا جار و مجروح. از ازینا هم نمیتونه بیاد مانند که انا زیدن حاجمن اصدون که انا زیدن باله اینجا هم گویی که زید حجوم کننده هست گویی که زید در حالت حجوم کننده هست اصد را خب اینجا که حال ما هست نمیتونه قبل از که بیاد قبل از چی بیاد گنه بله انیکول ابو اب مؤکدا انیکون مؤکدا مؤکدن... ان بالحال مدرن. لان المؤکد بعد المؤکد زمانی که كه... زمانی که كه... عامل به وسیله خود حال تاکید بشه به وسیله خود حال چی بشه پس این اینجوری است. این یکونه مؤکدن بالحالی زمانی که آمل تأکید میشه حال. مانند و ماننده والا برن. پشت کرد در حالی که پشت کننده بود که اینجا مدبرن داره والا رو چکار میکنه تأکید. تأکیدش میکنه چرا میگه در همچنین حالتی نمیتونه به خاطر این که مؤکد بعد از مؤکد میاد تأکید کننده بعد از تأکید شده میاد تأکید کننده بعد از تأکید شده میاد فائده یمتنی و تقدیم الحال على آملها في جميع المواد التي يجب فيها تأخيرها عن فائده میگه ممنوع است مقدم کردن حال بر عامل در تمام اون جایگاه هایی که واجب بود تأخیر حال بر صاحب حال. اون جاهایی که من الان خود نمیش که حال بعد از صاحب حال باید بیاد خب مسلمه موقعی بعد از صاحب حال بیاد به طریقه اولا بعد از عامل هم باید بیاد 211 يجوز حذف عامل الحال عامل الحال اذا دل عليه که كقولك لقاصد السفر صالبا اي سير صالبا وكقولك راكبا لمن قال لك كيف جئته بجد جائزه حذف کردن عامل حال زمانی که دلیلی بر آن دلالت کند مانند دل سخن تو به شخصی که قصد سفر کرده است تو بهش میگی سالما یعنی بروی در حالی که سالم باشی ولی اینجا خود اون به روی رو چکار میکنی فعلو؟ در از هست سر سالمند برو در حالی که سال سالم باشی اینجا سر, سر که فعل ما هست میکنی؟ آملو هست میکنی پس زمانی که دلیلی دلالت کرد میتونی آملو چکار کنی؟ یا زمانی که از شخصی از تو پرسیده کیف جئتا؟ چطوری آمده ای؟ تو هم میگی راکبند جئتو راکبند عاملو تشكار بيكولي؟ حس بيكولي دوستو سيزه يجب حذف عامل الحالي قياسا في ثلاث صور واجب است حسف عاملها بشكل قياسي درس جا درس حالت في حال السادة مسد الخبر نحو بر بي العابدة مسيئن زدن من عبد را غلام را در حالي كي بنه كاربوتو خب اینجا ضربی العبد ضرب مصدره مضاف بیاه هست یا لفظا مجرور هست و محلن مرفوح چون فائله العبد مفعول به ضرب هست خب ضرب شد مبتدا مسیعن حال هست دیگه این مسیعن صده خبر هست دیگه اینجا ما خبر نداری بله در همچنین حالتی حذف عامل واجب است. حص عامل چیاست؟ واجب. بسی پس اینجا این فاعل نداره ولی. في حال فی حال المؤکدتی ل مزم الجمله در اون حالی که مضمون جمله رو تاکید میکنه. مضمون جمله رو چکار میکنه؟ مانند زیدون ابوکه اطوفن زیدون ابوکه اطوفن که اینجا مؤکده مضمون جمله هست ما فی ما للتوبیخ و حالت سوام زمانی که ذکر بشه برای چی؟ متكلما و قد سیره ا متكلما وقد سیر بالنعش ا در این حالت هم واجب هست حذف هس عامل خود در این مثال ا متكلما وقد سیر بالنعش آیا در حال سخن گفتن هستی در حالی که برده شده است جنازه خب اینجا متكلما حال ما هست است كعامل الشيء هست حسن البته ان وقد سير بنعش خدش جمله حال فؤد ويحذف ايضا قياسا في الحال التي يتبين فيها زيادة في المقدار او نقص فيه ذه تصدق بدينار فصاعدا اشتري بالدرهم فصافلا والتقدير فذهب بالعدد صائدا و حطا بالمشتری بهی صافلن بکی ایکی و میشه عامل قیاسن در حالی که بیان میشه در اون زیادت در مقدار یا کم کردن از مقدار مانند تصدق بی دینار فصایدن کنجا چی چیز رو بیان میکنه زیادت در مقدار باره. يا در تري بدرهم فصافلا بخر بدينار بيك درهم و كمتر وچي؟ كمتر <تصفيق> <تصفيق> باللوكي انجا كمتر نقصو بيان بيكني والتقدير تقدير شي هست؟ فذهب بالعدد صائدان ونحط بالمشتري به صافلا كي انجا آمل حصف هست دو ويحذف سماعا في غير ذلك ميقص سماعا در جاه ديگي آمل چه ميشه؟ حصف ميشه مانه هنيئا بكا هنيئا؟ بك, هنيئن؟ بك. اي ثبت لك الخير هنيئا ثبت لك الخير تر حالك جواراست